بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين قال المؤلف رحمه الله تعالى وأسكنه فسيح جناته حدثنا محمد قال حدثنا مسدد قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا عبد الله بن عثمان بن خثيم عن شهر بن حوشب عن اسماء عن اسماء بنت يزيد رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بخياركم قالوا بلى قال الذين إذا رؤوا ذكر الله أفلا أخبركم بشراركم قالوا بلى قال المشاؤون بالنميمة المفسدون بين الأحبة الباغون البراء العنت بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين و آله و أما بعد 246 من حديث صح صحيحة هذا مفرد إمام بخاري رحمه الله وغفر له قص أس حديث أسماء بنت يزيد رضي الله عنها إن أصحادثي كي غير أز أمومنين آيشة كنانت معهود بودين قبلن و مرور داشتيم جد صحابيه از زنان اصحاب از رسول الله صلی الله علیه و سلم این حدیث رو نقل میکنه که میگوید رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودن الا اخبركم بخياركم بهتون نگم از بهترین شما خبر بهتون ندم نگویم بهتون که بهترین شما چه قالو ان قالوا بلى قال صلی الله علیه و salam الذين اذا ذكر الله اونها که وقتی که اونها رو میبینی یاد الله میافتنی الذين اذا رؤوا هناك چشمه تو چشمش میفته از اون وقار از اون هیئت دینیش الله چه اون زن با اون حجاب با اون حیاش و چه اون مرد با اون شکل مظهر اسلامیش دینیش از اون ریشه بلند از اون سویل کوتا برخلاف مجوس چنانچه رسول الله صلی الله علیه و اون دو تا شخصی که از نزد مجوس اومده بودن این کار روشون میکنه میگه که ما برخلاف این مامورین شما هاتون رو بلند کردیم ما معمون سیبی رو کوتاه کنیم و ریشا رو بلند بکنیم پس بهترین ما کسانین یعنی که با دیدن آنها یاد الله بشه به خاطر اون مظهر اسلامی مظهر دینی مظهر ادب و اخلاق ما رو بیاد الله بندازه حسن آراستگی اخلاقی غیر از مظهری افت کلام خوش اخلاقی خوش برخوردی. اینها همه نمادهای خوبی است خیارتو بهترین شما بهترین شما پس بهترین ما کسانی که خوش رفتار و خوش اخلاق رو مخاطب رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمایان انا و حسن الخلقکاتی کسی که اخلاقش خوبه خوش رفتاره من و او با هم اینطوری در بهشتین دو تا انگشت سبابه و انگشت وسط دستش رو با هم میچسبونه میگه من و اون کسی که خوش رفتاره مثل این انگشت سبابه و انگشت وسطی و هم میچسبونه میگه من و او با هم اینطورییم در بهشت این بهترینه دیگه دیگه بهتر از این میخوای باشی کنار رسول الله صلی الله علیه و سلم در بهشت اعلی فردوس باشی این جایگاه بالا این بهترین هاست بهترین شما اونهایی که با دیدن اونها بیاد الله بیفتی به خاطر اخلاق و رفتار نیکشون به خاطر هیئت درستشون کسن وقتی که اون شخص پایبند به شریعت باشه و دور از حرام باشه افلا اخبرکم بشرارکم از بدترین شما بهتون نگم بدترین کیین بدترین افراد شما چش خاصین قالو بلا گفتن آری قال المشاؤون بالنمیمه اونهایی که رفت آمدشون با نمامیه نشست و برخواستشون با نمامیه خوصا اونهایی که بین دوست و رفیق جدائی مندازن المفسیدون بین الاحبه فساد میکنن خراب میکنن رابطه میان دوتا فرد دوتا قاهر و برادر دوتا دوست بین پدر و فرزن المفسیدون بین الاحبه کسی فساد میکنه این فساد گاهی بین دو تا دوسته، گاهی بین دو تا همسایه است، گاهی بین دو تا خواهر و برادره، گاهی بین راعی و رعیه هست، حاکمه و محکوم فساده، به قصد فساد، تخریب کردنه، حاکم رو تخریب میکنن نزد اون محکومین، نز اون رعیه مردم تا شورش انقلابی پیش بیاد و الى آخر اینها خبرچین ها، دو به هم زنن ها، دو به هم زنی میکنن اینها شرار شما، بدترین شما هستن الباغون الور البغون يعني They who can their wives البغون یبغون یعنی They want البراع غیر یعنی برای بری ها که بری بدی دارن برای اونهایی که بری العنت قص فساد یعنی بین اونهایی که پاکن خواهد جدایی بندازن یه هدف از نمامیه قص از نمامیه خبرچینیه وقاطر همین اونجا داشتیم در درس قبلی که نبوی رحمه الله جدا میکنه اگر قصد اصلاح خوبی باشه اون شخص قصد فساد داشته باشه اگر نممی بیشه از اون قصد و نیت شومش مسطولی با خبر بشه اشکالی نداره اون استثناء اون پرانتز باز میشه بس اونهایی که سعی و تلاششون در افساد بین مردم خراب کردن رابطه بین مؤمنین اینها عملشون نهی که ناشای فقط بلکه شرورترین افرادن که اخوبتی سختی در پی خواهند داشت چنانچه در حدیث قبلی داشتیم از بهشت محروم میشن قال المؤلف رحمه الله باب من سمع بفاحشة فأفشاها حدثنا محمد قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا أبي قال سمعت يحيى بن أيوب عن يزيد بن أبي حبيب عن مرثد بن عبد الله عن حسان بن كريب عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال القائل الفاحشة والذي يشيع بها في الإثم سواء سدو سيو السبومين باب أز أبواب صحيح أدب مفرد من بخاري رحمه الله وأسكنه وفسيح جناته باب من سمع بفاحشة فأفشاها كسي كاز فاحشي بش نبي بات افشو شو, شو حكم الشي شي حديث داني دانين باب دویست و چهل هفتمین حدیث رو اینجا اما بخاری رحمه الله میاره از حدیث علی بن نبی طالب رضی الله عنه که حکم مرفوع رو داره خاطر اینکه عقوبت اومده عقوبت شرعی برای اون افرادی که چنین کاری رو انجام میده القائل الفاحشه اون کسی که سخن از فاحشه رو میان مردم آغاز میکنه القائل الفاحشه اون کسی که از زشتی میان مردم یاد میکنه اون زشتی شاید زنا باشه شاید عمل قبیحی مثل زنا شبیه اون باشه زشتی مثل زنا خیلی چیزا هست مثل فیلم های زننده و فاحشه الله فلانی نگاه میکنه فلانی تو موبایلشه فلانی اینجا هست فلانی اون اون فروشندشه اون خریدارشه اون بل قائل الفاحشه فهمیدید که کسی که از زشتی میانه مردم یاد میکنه یعنی یک کسی فعل زشتی را انجام داده یا فعل زشتی را انجام میده گفتی فقط زنانی زشتی اون زشتی شاید حجابی باشه، شاید بیبندباری باشه به انواع مختلفش. اون کسی که این فعل فاحش و زشت و زننده را میان مردم رو میکنه پنهان بود. کسی نمیدونه که مثلا کجا فیلم فلانی رو می فروشن یا فلان خانواده، فلان دختری دارن که اهل فلان کاره. آدرس بدی یا فلان کشور فلان چیز خونه توشه، فلان چیز توش آزاده، آدرس بدی، فلان شهر. کاباره هست فلان چیز هست ها هست آدرس بدی القائل الفاحشه تو الان گوینده اون زشتی. یعنی داری زشتی را مردم نقل میکنی و الَّذی یوشیع بها یوشیع بها یوظهرها یعنی کسی که اظهار میکنه. یعنی کسی که فاحش را داره انجام میده القائل الفاحش قائل الفاحش اون کسی که زشتی را انجام میده یا زشتی را به زبان میاره چون گفتیم، زشتی رفتار و کردار زشتی رفتار و کردار فاعلش قائلش فرقی با هم دیگه نداره اون زشتی گفتی بیبندوباریه اون زشتی زناس اون زشتی بد حجابیه رقص بیبندوباری با انواع مختلفش فیلم کلیپ آدرس سایت کسی بذاره در اختیار مردم بذاره این قسمت اول القائل الفاحشه قسمت دوم والذی الذي يشيع بها اون کسی که آدرس ها رو میده به مردم اشاعه میکنه پخشش میکنه رسانهیش میکنه تو مجلس ها از اون بازگو میکنه خبر میده به مردم آدرس میده به مردم فلان شهر توش فلان چیز هست این اشاعه چیه اشاعه فاحشه تو داری آدرس میدی تو عنوان داری میدی ان الذين يحبون تشيع الفاحشه في الذين امنوا لهم عذاب الیم في الدنيا والاخره والله يعلم وانتم لا تعلمون عقوبات برای اونهایی که اشراقه فاحشه میکنه یعنی خبر از اون فاحشه میدن به مردم اونا عذاب دردناکی در دنیا و آخرت خواهند داشت الله میداند و شما نمیدونید بغوی میگه در تشیع الفاحشه میگه یعنی یظهر و یذیع الزنا کسی که زنا رو انجام میده و اون کسی که اون زنا رو علنی میکنه میگه فلان کس مرتکب زنا شده چرا چهار تا شهود گذاشته تا حالا 1400 سال کسی نشده زنا رو ببینه چهار نفر با هم در یک مجلس زنا رو ببینن نشده. یک قانون خیلی سختی گذاشت. برای چی؟ برای اینکه که عادی نشه چه چیش سبب میشه که زنا برای من و تو آسون بشه؟ خیلی چیز ها. اولین چیز من دعوتگر بیام بگم فلان شهر، فلان کشور توش زنا عادیه، فلان کاباره هست، فلان رقاصه هست، فلان دختر هست، فلان چیز هست. آزاده. من اشاعه کردم. من شریک جرم اون فاحشکارم. فاحش کار اون کسی که بی داره انجام گفتم لازم نیست که اون بی زنا باشه شاید دختران بی باشن من آدرس اونها رو بدم یا کسانی که کلیپ و فیلمش رو میفروشن آدرس سایت بدم تلگرامشه نستگرامشه و غیر من و اون کسی که فاعل اون کاره در جرم شریکی این چیزی که این اثر میگه از علی ابن ابی طالب القائل الفاحشه والذي بها في الاثم سواء در گناه با هم دیگر مساوی هستند در گناه با هم دیگه مساوی خب این هشدار و تذکره و یاداوریه یاداوریه بر ما یک اینکه اگر کسی از ما دوچار گناهی از این گناه ها شد به زبان نیاری یک طرفی تخریب نشه اون طرف زش نشه از یک طرفی دیگر اون گناه اون زشتیش باقی میمونه چون وقتی که گفته میشه فلان مullah فلان شخص فلان شیخ فلان کس اون کارو کرده اشخاصی که ضعیف میمونن میگن که پس اگر اون شیخ این کارو کرده منم میکنم فلان شیخ مجوز داده ربا و بانک و سود یا فلان معامله رو با بانک انجام داده خب میگه شیخ انجام داده منم انجام میدم فلان شیخ موسیقی گوش میده یا موسیقی رو مجوزش داده خب منم میرم انجام میدم فرق داره که اون مجلس کدوم مجلس باشه کجا بگی یک مجلس علمیه تومی ادله ها را بررسی میکنه چهار تا طلبه جلو به تفرق میکنه تا اینکه تو جلو به عوام بخوای بگی باید بسنجی کجا داری میگی سوم از اون چیزهایی که سبب افتادن در دام های شیطانی از فاحشه و اشرای فاحشه میشه نگاه کردن فیلم های خصوصا مبتزل و زشت و زننده یک از دام های سخته مخاطر همین رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرماین ان العین تزنی وزناها زنای چش چش پیام رسانه به شرمگاهه به خاطر همین رسول الله صلی الله علیه و آله میفرمای عل عین تزنی و زناح و الاذن تزنی و, و زناع بعد میگه و یصدق و ذلك کل او یکذب فرج شرمگاهت یا تصدیق میکنه یا تکذیب یعنی تو با اون دیدنت سبب میشه اون دیدنت که تو در اون دام زنا بیفتی بر حذر باش چشمته با دیدنت ارزش اون گناه کاسته میشه ناکنه اون چیزی که گناه را جرمش کم میکنه یکی شنیدن و گفتن دو چیه دیدنه به خودت اجازه بدی که ببینی با گوش بشنوی خاطر همین رسول گفتن هم گفتن انن عنتزنی بعد گفتن ان سمع هم گوش دو تا زنا میشه هم چشم دو تا زنا میشه جایی باشه دیدن دل تمع میکنه ما باید جلوه هر چیزی که ما را به زنا نزدیک میکنه بگیریم ول تقربوا الزنا الله نگف ول اتزنی گفت ول تقرب وقتی گفت نزدیک نشید و وسائل رسیدن به زنا حرام شد از باب اولا خود زنا حرامه و حرمتش خیلی سختره وای بر اون کسی که بیفته در این فاحشه بزرگ و اونم زنا که جز موبقاته و جز گناهان کبیره ای که سزاش جهنمه قال المؤلف رحمه الله حدثنا محمد قال حدثنا بشیر بن محمد قال حدثنا عبد الله قال حدثنا اسماعیل ابن خالد عن شبیل ابن عوف رحمه الله قال كان يقال من سمع بفاحشه فافشاها فهو فيها كل الذي ابداها 248 اثر از آثاری که در صحية مفرد موفرد ما بخاری رحمه الله یاد کرده از شعيب بن عوف از تابعین که این چنین چیزی از صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم شنید چنانچه قبلن از چنانچه در اثر قبلی از علي بن ابي طالب داشتيم من سمع بفاحشه فافشاها كسيكه فاحشه را بشنوه فلان کس فلان عمل عملی فحشیر انجام داده فافشاه افشا بکنه زار بکنه فهو فيها كالذي ابداها مثل قذي قبلی در جرم شریک با اون کسی که اون فاحشه رو انجام داده یا اون زنا رو انجام داده باتر همین رسول الله صلی الله علیه وسلم آله دار میده از اینکه هر چیزی شنیدیم نگیم کفا بالمرء اثم ان يحدث بكل ما سمع هر چیزی شنیدی نقل بکنی گناهکار میشی در گناه میافتی در دام گناه میافتی بر حذر باش هر چیزی را نگو. قال المؤلف رحمه الله حدثنا محمد قال حدثنا قبيسة قال حدثنا حجاج عن ابن جريج عن عطاء رحمه الله أنه كان يرناك على من أشاع الزنا يقول أشاع الفاحشة. دویست شهلو نه همین اسال از آثاری که امام بخاری رحمه الله در کتاب ادامه فرد ورد اثر عطاء رحمه الله استادین که فتواشینی بود. ان که كان يرى نكالا من اشاع الزنا کسی ك اشعای زنا میکرد یعنی کسی مرتکب زنا میشد بعد شخصی سر زبانش میورد میگفت فلانی مرتکب زنا شده میگفت باید این شخص عقوبت بشه یقول اشاع الفاحشه این اشاعی فاحشه داره میکنه این داره اشاعی فاحشه میکنه و این باید عقوبت بشه با شلاق و یا با زندان انداختن و الی آخر باید عقوبت بشه تا دیگران درس و عبرت بگیرن بس از این ستا اثر این درس رو میگیریم غیر از اون اخلاق نادرست و ناپسند از بدگویی و بددهنی و بدزبانی و ناسزاگوی از جمله اونها چی داریم؟ از فاحش سخنگویی خبری از اون فاحشهی که انجام شده بر سر زبان بیاریم در جمعی که سبب بشه گناه و زشتی اون فاحشه کمرنگ بشه باید غلظت و نکارت و بدی اون گناه باید و قبحش باید باقی در زیر چشمه مردم قال المؤلف رحمه الله باب العیاب حدثنا محمد قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفیان عن عمران بن ضبیان عن أبي یحیی حکیم بن سعد قال سمعت عليا رضي الله عنه يقول لا تكونوا عجلا مذا يعبذرا أو بذرا فإن من ورائكم بلاء مبرحا مملحا وفي رواية مبلحا وفي رواية مكلحا وأمورا متماحلة ردوها سدو سيوشار من باب از ابواب صحيح هذا مفرد من بخاري باب العياب عيابة عیب کیه؟ عیب میتروشه عیب میگیره از این اون عیب های دیگران رو فاش میکنه عیبها ها و زشتی ها را فاش میکنه مثل آثار قبلی علی ابن ابی طالب رضی الله عنه میگوید لا تكونوا عجولا عجل از عجوله حجول نباشید مذایع مذیع رسانه هست رسانه نشید سخنگو نشید مثل رادیو مثل تلویزیون لا تکونو عجولا عجول نباشید. رسانه نشید. بذر. بدر. کسی که سری را فاش میکنه. هر چیزی میشنبه به سر زبون میاره. سر مردم را فاش نکنید. بلنگو نشید. عجول نشید. چند تا صفت داشتیم؟ تا توصیه است نصیحت ها. عجول نباشید. زود قضاوت نکنید. دو سخنگو نباشید. بلنگو نباشید. سه سر مردم را فاش نکنید کسی را تخریب نکنید نصیحته. فَإِنَّمْ من ورائكم بلاء شما بلاها و مصیبتها پیش روی دارید. مبرحه سخته مبرحه سخته سنگینه مبلح همراه با درماندگی یعنی اون سختی سختی را و بدی را در پی قاهید داشت. پیش روی شما فتنهای بزرگی هست. و اموران متماحله رودها فتنه های دور دراست تونانی سنگین رودها سنگین در پی خواهید داشت یعنی این کار شما سبب میشه که دوچار مصیبت و فتنه بشید یعنی اینها جز فتنه و مصیبت چیز دیگه به بار نمیاره بر باشید راه نجات و خلاصی و نجات یابی در فتنه ها و مصیبت های این چنین چیه عجول نبودن متأنی بودن یعنی متأنی باشی، عجول نباشی راه نجات اینکه که زبانتو نگه داری بلنگو و سخنگو نباشی اینکه سر کسی را فاش نکنی سر کسی را فاش نکنی نه راه ها هست که اینجا علی بنبی طالب رضی الله عنه اینجا ما را یادواری میکنه تا اینکه بر اون اخلاق خودمون را آراسه بکنیم اینها اخلاق اخلاقیات یعن که ما را آراسه، ما را درست کار و ما را رفتار میکنه <تصفيق> قال المؤلف رحمه الله حدثنا موسى قال حدثنا وهيب قال أخبرنا داود عن عامر قال حدثني أبو جبيرة ابن الضحاك قال فينا نزلت أي في بني سلمه ولا تنابزو بالألقاب قال قدم علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس منا رجل إلا له اسمان فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا فلان فیقولون یا رسول الله انه یغضب منه 251 حدیث از احادیس صحیح ادام مفرد من بخاری رحمه الله حدیث ابو جبیره که میگوید این آیه در شأن ما انصار نازل شده فینا نزلت بنی سلامه بنو سلامه از قبایل انصار بود قبایل معروف انصار رضی الله عنهم اجمعین میگوید این آیه ولا تنابزوا بالالقاب به هم دیگر لقب ندید بون لقب هایی که دوست ندارید کسی شما را صدا بزنه این آیه میگه در شأن ما نازل شده الله ما رو بر حذر شمرده که همدیگر رو نارنجونیم با لقب دادن بد به هم دیگه قال قدم علينا رسول الله صلی الله علیه و سلم و ليس من رجل الا له اسمان زمانی که رسول الله صلی الله علیه و سلم به مدینه کسی از ما نبود مگر دوتا نام داشت دوتا اسم داشت فجعل النبي صلی الله علیه و سلم یقول یا فلان میگه ای فلانی فیقولون می‌گفتن به رسول الله صلی الله علیه و یا رسول الله انه یغضوا من ان بدش میاده یعنی تا اون شخص با اون لقب نگی یا نمی‌شناسن ها یعنی باید یکی لقبی بهش بدنه اگر طرف بدش بیاد اینجا بحث معیاره انه یغضوا من یعنی رسول الله صلی الله علیه و اون شخص ناراحت میشه اینجا تنابوز به القاب در صورت اینه که تو به سر زبون بیاری و تو سبب رنجش طرف بشی جون اینجا بر اساس هم گفتن گفتن که فلانی ناراحت میشه خشگین میشه وقتی که این لقب را میشنبه اینجا هست که این آیه نازل میشه ولت تنو بزوب به هم دیگه لقب ندید. وقتی که طرف بدش بیاد. حالا مثلا در حدیث داریم. حدیث دیگر را همین در سونه بود بود که میگه ما يا رسول الله ما حرف نهی به نه يا رسول الله انه يغظ من هذا از این اسم بدش میاد. یعنی این اسم به رنجشش میشه. ابن حجر میگه ما در علم حدیثی خصوصا علم رجال داریم بعض از علماء یاد شدن با بعض از لقب ها که ما ناچاریم از اون یاد بکنیم مثلا بعضی ها به مادرش مادر بزرگش نسبت داده شدن ابن اینه یا الاعمش یا الاعوار کوره شله یا ظال خب اینها ها لقب ها ما مجبوریم به خاطر که فهمیده بشه که آقا این غیر از اونه همه اسماشو محمده خب بعد ما بقينا إيم محمد أعماشة ترى إين كا بفهمان كا آه إين أعماش كية مجبرين كا من مقابل دوست نداشته باشه. شه در علم حدسي كا غتر همين ابن حجر ميكر إن اللقب إن كان مما يعجب الملقب ولا إطراء فيه مما يدخل تحت نهي الشرف فهو جائز أو مستحب يعني اللقب اگر شخص بدش نيات جائزة مستحبة وإن كان مما لا يعجبه إن كان اللقب مما يعجب الملقب ولا إطراء فيه إذا كان غلوف نباشه مما يعجب الملقب انك لو كان اللقب دادن ميشه خوشش بياد هذا اللقب قهرمان عيسى قهرمان خوشش ميات جائزة يوم السحب حسنا وقتك مخاي تدلش سرور بندازية و كان مما لا يعجبه إذا خوشش نميات فهو حرام أو مكروه يا حرام يا مكروه إلا إن تعين للتعريف به مغار إنك بخاطره آشنایی با او باشه که اون کیه یشتهر بهی وی و لا تمییز عن غیره خصوصا وقتی که میخوام از باب یعنی از باب اینکه معرفی بشه این کدوم یکی از این دو تا محمده گفته میشه این محمد فلانیه اینجا میگه کراهت داره و ما ناچاریم که از اون لقب استفاده بکنیم و الا حرام چون الله جل و علا در قرآن ما رو نهی کرده ازش ولا تنابذوا بالالقاب به هم دیگه لقب ندید قال المؤلف رحمه الله حدثنا الفضل بن مقاتل قال حدثنا يزيد بن أبي حكيم عن الحكم قال سمعت أكرمة رحمه الله يقول لا أدري أيهما جعل لصاحبه طعاما ابن عباس أو ابن عمه فبينما الجارية تعمل بين أيديهم إذ قال أحدهم لها يا زانية فقال ما إن لم تحدك في الدنيا تحدك في الآخرة قال أفرأيت إن كان كذلك؟ قال إن الله لا يحب الفاحش المتفحش ابن عباس الذي قال إن الله لا يحب الفاحش المتفحش تبسو فانجهو دومين أسار از أصاري كأمان بخاري رحمه الله دار كتاب صحية دار مفرد وورداز أكرمين رحمه الله كم لا أدري أيهما جعل لصاحبه طعاما ابن عباس وابن عمه رضي الله عنهم أجمعين نمي دون أمير يكي غذا درست کرده بود برای دیگری ابن عباس یا پسر اموش مگه فبین الجار تعمل و بین ایدی هم کنیزی اونجا داشت کار میکرد افقال احدهم لها یکی از اونها منظور اینجا پسر اموی ابن عباسه گفت به اون کنیز یا زانیه، ای زن فاحش ای زن زناکار فقال مه الان چنانچه در ادامه روایت اومده ابن عباس میگه مه یعنی توقف بیست یعنی اینجا او را متوقف میکنه. از این ناسزاگویی از این اتهام از این قذف اتهام به فحش به یک دختره که کنیزی که زنا ازش ندیده اگه دیده بودم و چهار تا شاهد نداشت باید حد قذف روش اجرا میشد فقالمه ان لم تحدك کف الدنيا اگر قصاص ازت نگیره در این دنیا حدک ای لم تقم علیك الحد اگر حد رو اجرا نشد حد قذف چناچ رسول الله صلی الله علیه و سلام می‌فرمایان من قذف مملوکه و هو بریئ ما قال جلید یوم القیامه الا ان یکون قال کسی که کذیز خودش برده خودش تهمت زنا بزنه روز قیامت شلاق زده میشه مگر اینکه اون شخص واقعا زناکار باشه یعنی اون کنیز یا اون برده قصاصه یا در این دنیا الم ای تحدک فی دنیا تحدک فی الاخره در این دنیا قصاص نشودی در آخرات قصاص میشی عقوبات عقوبت میشی چنانچه رسول الله صلی الله علیه و آله میفرمان من ظلماً ضرب به ضربا ظلما اقتص منه یوم القیامه کسی ظلم کنه با زدنی کتک زدنی روز قیامت قصاص میشه قصاص حقه مثل حدیث مفلس که رسول صلى الله میفرمان اته دون من مفلس من مفلس کیه روز قیامت فیاخذ هذا من حسناتي وهذا من حسناته حسناتش رازش میگیره چون در حق اونها ظلم کرده هر نو ظلم می‌کردی چه با زبانت چه با دستت چه با چشمت چه با گوشت روز قیامت قصاص میشی. قال افریت این کان کذالک. اون شخص بهش میگه پس رامیه ابن عباس رضی الله عنه مجمعی میگه ابن عباس میگه خب اگر اینطوری بود یعنی واقعا اون زن زنا بود. قال رضی الله عنهما ابن عباس رضی الله عنهما میگید. الله لا يحب الفاحشة المتفحش. الله کسی که صاحب عمل کردار بدهی. کسی که فعل گفتارش زشته گفتار و زشته زننده الله ورضى صدر إن الله لا يحب الفاحش المتفحش کسیکه ناصز و گوه دشمنام گو هست فحش میده الله ورضى دوست نداره الله لا يحب الفاحشه المتفحش بجا ابن عباس الذي قال ان الله لا يحب راوي ميجا اكرم ابن عباس هست که این چنین سخنان رو گفته این هم ازباب این اینکه این سخنان بدونیم که کی گفته و چرا گفته ابن عباسه این سخنانش حکم مرفع رو داره چون داره از عقوبتی یاد میکنه که این عقوبت ها عقوبت های شرعیه که از قبیل وحیه انسان نمیتونه درش اشتهاد بکنه یک حکم فقی نیست بلکه یک حشداریه یک وعیدیه بر اون کسی که به دیگران ناروا روو و ناسزا میگه و بهشون فحش میده سبحانك الله وبحمدك سبحان الله وبحمده وصلى الله على محمد وعلى آل محمد